امروز عده‌ای در کلیساها هستند که کلام خدا رو خیلی خوب نمیفهمن. اونا بر این باورن و این رو به مردم تعلیم میدن که خدا هرگز نمیخواد ما رنج بکشیم و یا بیمار بشیم و ناراحتی داشته باشیم. دوستان، این حقیقت نداره و کتاب مقدسی نیست. این تعلیم کلام خدا نیست. امروز سی دلیلی رو که چرا قوم خدا رنج میکشن، مطالعه خواهیم کرد. لطفاً به دقت گوش کنید این شما و این معلم ما در جلسه قبلی کتاب ایوب رو تموم کردیم و دیدیم که کتاب ایوب کتابی بسیار شیوا و مهیج بود و شاید جامعترین جواب در کل کتاب مقدس باشه که به این سؤال قوم خدا در طول هزاران سال داده شده چرا مردمان خوب رنج میکشند بسیاری از ما وقتی افراد شریر رنج میکشند ناراحت نمیشیم اما وقتی انسان خوب رنج میکشند اکثر ما این سوال رو میپرسیم. قوم خدا میپرسند چرا باید شخص نیکوکار رنج بکشه. کتاب ایوب تنها جوابی نیست که در کتاب مقدس به این داده شده. وقتی کل کتاب مقدس رو بررسی کنید، خواهید فهمید که کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه به واقعیت رنج اشاره کرده. من میخوام برخی از آیاتی رو که در کتاب مقدس به رنج اشاره کرده بررسی کنیم. امروز در دنیا یک الهیات غلطی رایج شده که به الهیات کامیابی مشهوره. این الهیات میگه که خدا هرگز نمیخواد که قومش رنج بکشن. خدا نمیخواد که قومش مریض بشن، نمیخواد قومش فقیر باشن. اونهایی که از این الهیات دفاع میکنن میگن که اگر شما بیماری مزمنی دارید یا دائما در فقر هستید، شما اصول پادشاهی خدا رو مراعات نمیکنید. اگه به کشورهای دیگه سفر کنید، حتی کشور خودمون اونجا که مردمان ای در فقر زندگی می کنند و مسیحیانی رو ببینید که در رنج و جفا هستند خواهید فهمید که الهیات کامیابی کتاب مقدسی نیست. بعد از بررسی کتاب ایوب می خوام رابطه بین کتاب ایوب و دیگر کتاب ها در کتاب مقدس رو به شما نشون بدم. یکی از مشاهدات من وقتی که هر شست و شش کتاب کتاب مقدس رو بررسی می کردم این بود که دیدم بین همه این کتاب ها یک اتحاد و یک پارچگی وجود داره و چطور این کتاب های مختلف به هم دیگه مربوط هستند؟ میخوام به شما نشون بدم که چطور کتاب ایوب با بقیه کتاب های کتاب مقدس مربوط هست؟ با مشاهده پیغام کتاب ایوب میبینیم که این پیام بسیاری از کتاب های دیگر در عهد قدیم و جدید هم هست. مایلم این مطالعه رو تحت عنوان سی دلیل کتاب مقدسی که چرا قوم خدا رنج میکشن براتون توضیح بدم. وقتی اولین بار فهمیدم که بر این حقیقت در کتاب مقدس تاکید شده دوازده دلیل رو یک جا جمع کردم تحت این عنوان که چرا قوم خدا رنج میکشند بعد از چندین طوفان در زندگی شخصی خودم این عنوان رو عوض کردم و به این یکی دلایل بیشتری برای رنج کشیدن قوم خدا نام دادم همانطور که می بینید سی دلیل جماوری کردم و گمان میکنم تا وقتی که باز نشسته بشم، صد دلیل دیگه هم پیدا خواهم کرد حالا میخوام این سی دلیل رو با هم بررسی کنیم. اولا رسالات عمومی که در پایان عهد جدید هستن همه با اشاره به مشکلات و رنج ها شروع میشن. وقتی پتروس رسالش رو مینوشت مکررن به رنج اشاره میکنه. پتروس در رساله اولش چهارده بار بر رنج اشاره میکنه. پتروس بر رنج تأکید میکنه چون میدونه کسانی که او براشون نامه مینویسه در رنج هستن. اون موقع پتروس در روم زندگی می کرد و میدونست جفهایی که در روم شروع شده به سایر ایالات روم هم سرایت کرده جایی که خانندگان او زندگی میکردند. پتروس میدونست که رنج این مردم هر روزه در حال افزایش هست. بنابراین در این نامه بیشتر در مورد رنج با اونها صحبت کردم. پتروس در رساله اولش که به رنج اشاره کرده یک چنین چیزی نوشته.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 پتروس به اونهایی که رنج میکشند و رنج بیشتری خواهند کشید میگه که رنج هایی که میکشید بی هدف نیستن. هدف از رنج کشیدن اونها این بود که وقتی عیسی مسیح برمیگرده ایمان اونها رو تایید کنه. پتروس این مثال رو به کار میبره که طلا با آتش خالص میشه. ایمان شما بسیار با ارزشتر از طلاست. تلا از بین رفتنیه. ایمان شما که خیلی با ارزش از طلا هست. با آتش آزمایشات خالص میشه. پطرس همینطور برای اونها می نویسه که وقتی خدا به پایین و به زندگی اونها نگاه میکنه وقتی خدا می بینه که اونها به رنج نیاز دارن اون موقع خدا اجازه میده که که رنجها وارد زندگی اونها بشند. به عبارت دیگه به قول زمانهایی هست که قوم خدا لازمه که رنج بکشند. پطرس همینطور میگه که این رنجها موقتی هستند. رنجها دوره ای دارند. یک بار شنیدم مردی میگفت گفت آیه محبوب او در کتاب مقدس این هست این نیز بگذرد وقتی از او پرسیدم چرا این آیه محبوب او هست او جواب داد وقتی که خدا رنجی برای من میفرسته او توقع داره که من رنج بکشم اما من همیشه این آیه رو اعلام میکنم کنم که این آمده تا بگذرد نیومده که بمونه اومده که رد بشه به قول پتروس رنج ماندگار نیست رنج میاد و میگذره رساله دیگری که در همون آیه اول خودش به رنج اشاره میکنه، رساله یعقوب هست. رساله یعقوب در باب اول آیه دو به ما میگه ای برادران من، هرگاه تو چاره گوناگون میشوید، بی نهایت شاد باشید. چون میدانید اگر خلوص ایمان شما در آزمایش ثابت شود، بردباری شما بیشتر می شود. و وقتی بردباری شما کامل شود، شما انسانهای های کامل و بی نقصی شده و به چیزی محتاج نخواهید بود. خوشا حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت به قول یعقوب یک ترتیب هست که ما باید در تجربیات رنج هامون کشف کنیم یعقوب اولا میگه که امتحان ایمان به پایداری در ایمان منتهی میشه در زمانهای آزمایش غالبا شما به جایی میرسید که میگید نمیدونم چیکار کنم. برای اولین بار در زندگیم واقعا نمیدونم چیکار کنم. یعقوب می‌نویسه وقتی در آزمایشاتتون به جایی رسیدید که نمیدونستید چیکار کنید از خدا حکمت بطلبید. خدا میخواد که شما از او حکمت بطلبید. خدا میخواد که شما بدونید او منبع حکمت هست. اگر او، اگر از او حکمت بطلبید او دریق نخواهد کرد و حکمت رو بر شما خواهد داد. بعد یعقوب می نویسه پایداری در ایمان طلبیدن حکمت از خدا هست و به پیروزی در ایمان منتهی میشه. وقتی کسی آزمایش شده و اجازه داده این آزمایش را به جایی برسونه که به سوی خدا برگرده و از او حکمت به پایداری در ایمان رو تجربه کرده. اون موقع هست که او به تاج حیات یا پیروزی در ایمان دست خواهد یافت. پس به قول یعقوب، یک توالی و ترتیبی در دوره‌های رنج کشیدن ما هست. یعقوب به رنجها این طور اشاره کرده. پولس رسول رنج‌های زیادی کشیده و حرف‌های زیادی برای گفتن به ما داره. در آیات نخستین دوم قرنتیان پولس هم به مردم رنج دیده اشاره می‌کنه. خود پولس به تازگی از تجربه جدی رنج بور کرده. این دوره‌ای از زندگی پولس بود که در لستر سنگسار شد. و به حالت مرگ رها شد. پولس در دوم قرنتیان باب یک آیات سه تا چهار در مورد رنجهای خودش و رنجهای اونها می نویسه و اینطور میگه. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمامی سختی ها و زحمت های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما فرمود. کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم در این متن زیبا پولوس خدا را به عنوان منبع همه آرامش‌های حقیقی معرفی کنه. خیلی از ما زندگیمون رو بدون هیچ کشفی به پایان می‌بریم این چیز ساده رو نمی‌بینیم که راحتی فقط از خود خدا به دست میاد رنج‌ها اغلب ما رو به سمت خدا میکشند و بعد ما به اون کشف الهی دست پیدا می‌کنیم این امکان داره که در رابطتون با خدا او رو به روشی بشناسید که بتونه به شما آرامش بده. ارمیادنتون یکی از اسرای جنگی ما در خلال جنگ ویتنام بود. ارمیادنتون داستانی رو به ما میگه که در اون او میفهمه در شناخت خدا چه آرامشی هست. مانند بسیاری از خلبانان زندانی ما، او به مدت هفت سال در یک سلول انفرادی بود که بهش هیلتون هانوی میگفتند. در اون سلول کسی جز خدا نبود که او را آروم کنه و قطعاً جای دیگری هم جز حضور خدا نبود که به اونجا مراجعه کنه. بسیاری از اوسرای جنگی مثل ارمیادنتون قبل از تجربه سلول و انفرادیشون مردان روحانی عملی نبودن. این تجربه اونها بود که باعث شد اونها بفهمند که خدایی هست و اون خدا اونجاست و خدایی که اونجاست میتونست اونها را آروم کنه. به قول پولس رسول آرامش بسیار ارزشمندی هست که فقط از شناخت خدا به دست میاد خدا حضور داره و او منبع این آرامش هست خدا نمیخواد که قومش توی زندگی نفهمند که او به خاطر اونها حضور داره گاهی اوقات خدا به تجربیات رنج جازه میده که به قومش کمک کنه تا به این کشف بزرگ دست پیدا کنند که خدا منبع تمامی آرامش هست امکان داره که به نوعی رنج بکشید که فقط خدا میتونه شما را آروم کنه. گاهی هیچ کس جز خدا در مورد رنج شما نمیدونه. گاهی رنجهای ما انقدر شخصی و محرمانه هستند که ما خودمون رو در یک سلول انفرادی و تنها حس میکنیم. ما جدا شدیم. ما خدا رو ساکت کردیم. وقتی که این اتفاق میفته به این کشف بزرگ دست پیدا میکنید. خدا حضور داره و میتونه شما را آروم کنه. شرح دیگری از ارزش رنج در این متن آمده. پولس می‌نویسه که وقتی رنج‌های ما ما رو به سوی خدا می‌کشه و ما می‌فهمیم که آرامش واقعی فقط در رابطه با خدا به دست میاد، اون موقع ما این شایستگی رو پیدا می‌کنیم که به دیگران تسلی بدیم. چیه که یک مشاور خوب به بار میاره؟ بی شاپ فلتون شین سال‌ها پیش یک مشاور خوب رو اینطور تعریف کرده. او گفته اگر به مشاور نیاز دارید، اولاً من به شما میگم که نزد چه کسی نباید برید نزد جوانان نرید چونکه اونها اونقدر عمر نکردند که رنج بکشند و هیچ دلسوزی ندارند اونها فقط یک کتاب به شما معرفی میکنند پس نزد مشاور جوان نرید نزد کسی نرید که خودش مشکل شما رو داره و هنوز اون رو حل نکرده اگر میخواهید که ازدواجتون رو حفظ کنید نزد کسی نرید که برای سومین بار ازدواج کرده و اون ازدواج هم سست و بی دوام هست. اگر دنبال مشاور خوب می گردید، کسی رو پیدا کنید که مشکل شما رو داشته و اون مشکل رو حل کرده اون شخص شایستگی داره که به شما مشورت بده پولس رسول می نویسه که وقتی خدا به رنجها در زندگی شما اجازه میده، اون رنج شما رو به سوی خدا می کشونه و شما رو وادار میکنه بفهمید که آرامش رو فقط میتونید در خدا پیدا کنید بعد وقتی با کسانی مواجه بشید که در رنج هستن می‌تونید اون‌ها رو به سمت منبع آرامشتون هدایت کنید یک مبشر انجیل مثل این هست که یک گدا به گدای دیگه میگه که در کجا نان هست. یک مشاور شخص رنج دیده ای هست که به شخص رنج دیده دیگه میگه در کجا آرامش هست. چه چیزی هست که میتونه از شما یک مشاور شایسته بسازه؟ رنج و هیچ راه میانباری هم نداره. کلمه همدردی به معنی درد کردن احساسات کسی هست. اگر چیزی رو که کسانی حس میکنن قبلا قبلاً حس نکرده باشید چطور میتونید با اونها هم دردی کنید چطور میتونید دلسوز و با اونها هم دل باشید در آیات نخست دوم قرنتیان پولس به ما میگه که این یکی از ارزشهای رنج هست. رنج مشاورانی لایق میسازه. متن دیگری در نوشته های پولس هست که ارزش رنج رو به ما نشون میده در این متن پولس رسول شهادت شخصی خودش رو با ما در میون میذاره در تفسیر باب دوازدهم آیات شش تا دوازده پولس به ما میگه چون تجربیاتی که من داشتم بسیار وحشتناک بودند و خدا نخواست که من به خاطر اونها مغرور بشم به خاطر همین یک مشکل جسمانی به من داده که مانند خاری در جسم من هست. عاملی از شیطان تا آزارم دهد و غرورم را بشکند. سه بار از خدا درخواست کردم که این را از من برداره و هر بار خدا گفته فیض من تو را کافی است یعنی من با تو هستم و این تنها چیزی هست که تو نیاز داری زیرا قدرت من در ضعف به کمال میرسد. حالا از اینکه چقدر ضعیف هستم افتخار می کنم و خوشحالم جوری زندگی می کنم که به جای این که قدرت ها و توانایی های خودم رو نشون بدم قدرت مسیح رو ظاهر می سازم از اون جایی که می دونم تمامی اینها به خاطر مسیح است، من کاملا به خاطر اون خار خوشحال هستم چون هر وقت ضعیف هستم آنگاه قدرت دارم هرچه کمتر دارم بیشتر به او وابسته هستم پولوساتی شفا داشت بسیاری از مردم به واسطه خدمت او شفا می‌یافتند و بعضی ها از مرگ برخواستند این مردی که عملا مرده ها رو زنده می‌کرد یک بیماری داشت سه بار از خدا خواست که بیماریش رو برداره محققان مطمئن نیستند که بیماری او چی بوده شاید مشکلی در بینایی او بوده که این غم بزرگی برای دانشمندی مثل پولس رسول بود سه بار او از خدا خواست که به او شفا بده و هر سه بار خدا گفت نه نه نه خدا دلیلش رو برای نه ارائه کرده بود خدا اون رو اینطور بیان کرده قدرت من در مردم ضعیف بهتر تجلی میکنه اگر من اجازه بدم که تو قوی باشی و با قوت خودت به این سو آن سو بری تو قوی دیده میشی اما شاید خواسته های خودت رو انجام بدی بنابراین تو را در ضعف نگه می‌دارم، اونقدر زعیف که همیشه به من متکی باشی وقتی پولس این را از خدا دریافت کرد نه تنها جواب خدا رو پذیرفت بلکه از جواب خدا جلال یافت او گفت هرچه کمتر دارم بیشتر به او متکی هستم اگر باید این طور باشه پس در زعفهایم جلال خواهم یافت تا قدرت مسیح در من قرار بگیره این متن دو شرح از رنج به ما میده اولیش اینه خوشا به حال فقیران در روح، خوشا به حال ماتمیان. وقتی عیسی این رو در موعظه سر کوه به ما گفت، عملا داشتین رو به نخستین کسانی که به مسیحی آورده بودند تعلیم میداد. تعلیم میداد که چطور اونها میتونن بخشی از راه حل و بخشی از جواب او به مشکلات این دنیا باشند. عیسی به اونها گفت: قبل از هر چیز میخوام راجع به رفتار شما صحبت کنم. اولین رفتارهایی که شما باید داشته باشید تا بتونید بخشی از راه حل و جواب من به نیازهای موجود در این دنیا باشید اینه. باید بدونید که فقیر بودنه در روح یعنی چی و وقتی اون رو یاد میگیرید شما رنج خواهید کشید و ماتم خواهید گرفت. عیسی داشت درباره فروتنی صحبت میکرد. فروتنی دقیقا اینه. اون میگه من نمیتونم اما او میتونه. این من نیستم بلکه او هست این کاری نیست که من بتونم، بلکه کاری هست که او میتونه. این دیدگاه من از فروتنی هست. شما میتونید با قوت خودتون برید بیرون و هر کاری میخواید بکنید. مخصوصا اگر شخصی تحصیل کرده یا با استعداد هستید. اما نمیتونید کار خدا را انجام بدید. شما ممکنه بسیار تحصیل کرده باشید و به طرز حیرت انگیزی با استعداد باشید. اما نمیتونید بدون خدا کار خدا را انجام بدید وقتی خدا میخواد کارش توسط شما پیش بره خدا اجازه میده که قصه بخورید پس شما باید یاد بگیرید که در روح فقیر باشید پولس میگه و برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق العاده ای که داشتم مغرور نشوم ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شده که مانند عاملی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم اگر شما نیمی از عهد جدید رو نوشته بودید آیا فکر نمی نمی‌کنید کمی مشکل غرور پیدا می‌کردید بر اساس این مد بیماری عیوب و بیماری پولس عاملهایی از شیطان هستند که این دو مرد خدا رو با اجازه و اراده خدا آزار می‌دند بنا به گفته پولس خدا به شیطان اجازه داده که پولس رو مبتلا کنه چون خدا میدونست که این بیماری او را فروتن خواهد کرد یکی از دلایل کتاب مقدسی که قوم خدا رنج می‌کشند اینه که خدا میخواد قومش فروتن باشن. شاید اولین دلیل رنج کشیدن قوم خدا که در این متن میبینیم اینه که قوم خدا باید به بیکفایتی خودشون پی ببرند و بفهمند که تمامی شایستگی از آن خداست اگه قرار کار خدا توسط ما انجام بشه، ما دقیقاً باید یاد بگیریم که چیکار میتونیم بکنیم و چیکار نمیتونیم بکنیم. و او چیکار میتونه بکنه و چیکار خواهد کرد تا ما رو در مسیر نگه داره برای اثبات کفایت خدا ما باید عدم کفایت خودمون رو تجربه کنیم به ناب گفته خود پولس رسول به این دلیل که خدا اجازه داده پولس رسول با یک بیماری ضعیف بشه شرح زیبایی از مفهوم رنج در زندگی قوم خدا در مزمور 126 هست کسانی که با گریه برای بزرفشانی بیرون میروند محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند آورد این شرحی آشنا از قانون کاشت و درو هست که کتاب مقدس بارها در جاهای مختلف به اون اشاره کرده. کتاب مقدس به ما میگه که هرچی را که کاشتیم درو خواهیم کرد. در این متن نگرچه کاشتن رنج هست و بذرها اشک وقتی شما عشقها رو به خاطر رنجتون کاشتید به گفته مزمور 126 شما بذر ارزشمندی کاشتید و خبر خوش اینه که به گفته مزمور 126 روزی شما با شادمانی محصول خودتون رو به خانه خواهید آورد یا ثمره تجربیات رنج خودتون رو به دست خواهید آورد. به عبارت دیگه تجربیات رنج شما تجربیات کاشت شما منجر به درو کردن تجربیات خواهد بود. بسیاری از ما در زندگی خودمون به خاطر رنج‌هایی که کشیدیم، محصولاتی جمع کردیم و یا ثمراتی که میتونیم نشون بدیم. ما درس‌هایی گرفتیم که ما رو در زمینه هایی به لحاظ روحانی رشد داده و دلیلش مستقیما رنجهای ما بوده این برکات روحانی محصولاتی هستند که ما برداشت کردیم که از بذر هایی که در تجربیات رنجمون کاشته بودیم به دست اومده در مزامیر مطالب زیادی در مورد رنجها هست در آیه نخست مزمور چهارو میگه ای خدا، ای مدافع من دعای مرا مستجاب فرما هرگاه پریشان بودم تو به فریاد من رسیدی اکنون نیز از روی کرم دعای مرا بشنو اینجا شرح زیبایی از این دلیل داریم که چرا قوم خدا رنج می کشن. در تنگی فراخی هم بخشیدی به زندگی خودتون برگردید و به این سوال پاسخ بدید کی در زندگی روحانیتون رشد کردید در زمانهای کامیابی و برکات عظیم رشد کردید یا در زمانهای رنج و امتحانات لازم نیست که برای رشد حتما آزمایش بشید اما اکثر ما بیشتر زمانی رشد میکنیم که در آزمایشات قرار می‌گیریم یادم میاد که با یک مرد خداشناسی ملاقات کردم که او منو در سفر روحانیم شبانی کرد در ملاقاتمون ما درباره این بحث می‌کردیم که یک نفر چطور میتونه واقعا خدا رو بشناسه او منو به چیزهایی هدایت کرد که خوب پیش می‌رفتند من داشتم به او میگفتم که چطور مشورتهای او موثر بوده و به او گفتم کاسم لبریز شده. این مرد خداشناس به من گفت خب کاست به چه بزرگیه؟ یک کاسه کوچک خیلی طول نمیکشه تا لبریز بشه. چرا از خدا نمیخوای کاسه بزرگتری بهت بده؟ و اینجا او نصیحتهای بیشتری به من داد. کاسه کوچکت رو به کاسه بزرگتر تبدیل کن و کاست رو به یک سطل تبدیل کن و سطلت رو به یک تانکر. من خیلی جوان بودم و نسبت به این دعا خیلی رقبت نداشتم. میدونید خدا چطور کاسه کوچکتون رو به کاسه بزرگ تبدیل میکنه و کاسه بزرگتون رو به سطل و سطلتون رو به یک تانکش؟ با رنج، این روش کار خداست. وقتی شما اون دعا رو میکنید که خدا یا ظرفیت من رو افزایش بده که تو رو بشناسم و تو رو خدمت کنم و بپرستم، فکر میکنید خدا چطور ظرفیت شما رو برای اون چیزها افزایش میده. به عبارت دیگه، خدا چطور ما رو خواهد داد؟ توسط رنج ها این چیزیه که داوود در مزموره چهار یک به ما میگه در شش آیه اول مزامور سه، داوود دلیل کتاب مقدسی دیگری برای رنج ها به ما میده داوود زمانی که این مضمور رو مینوشت از تجربیات رنج بزرگی عبور میکرد داوود مینویسه که بسیاری به او میگفتند دیگر هیچ امیدی در او برای خدا نیست کل کشور بر علیه داوود بودند داوود از پسرش ابشالوم فرار میکنه که تمام قوم اسرائیل رو بر علیه پدرش تحریک کرده اما داوود این اطمینان رو داره او می نویسه اما تو ای خداوند سپر هستی به دورم جلال من و سرفرازنده من داوود از کجا میدونه که خدا برای او پادر میانی خواهد کرد داوود این رو با نوشتن این به ما میگه خداوند را به فریاد بلند میخواندم و او از کوه مقدسش اجابت هم فرمود من آرمیده به خواب رفتم و باز بیدار شدم زیرا خداوند نگاهم می‌دارد از هزاران هزار نخواهم ترسید که از هر سو بر من صفا راستند نجات از آن خداوند است چیزی که داوود در رویارویی با تجربیات رنجش میگه دقیقا اینه او میدونه که خدا او را نجات خواهد داد و در این حال خدا شرایطی فراهم خواهد کرد چون که بارها در گذشته داوود شرایط سختی رو داشته و نزد خدا ناله کرده و خدا به او پاسخ داده و او رو نجات داده. چیزی که داوود واقعا میگه اینه که وقتی که با شرایط خیلی سختی مواجه میشید این موقعیتی هست که خدا رو تایید کنید و آن چیزی رو که بهش علامت معجزه میگید گسترش بدید. خداونده من به معجزه نیاز دارم. مرا از این و از خارج کن. خداوندا برای حل این مشکل من به یک معجزه نیاز دارم. وقتی شما ده ها بار نزد خدا فریاد میکنید و او در شرایط شما وارد عمل میشه دیگه وقتی که با شرایط سختی مواجه میشید وحشت نخواهید کرد چون که میدونید خدا قبلا به دعاهای شما پاسخ داده و احتمالا باز هم پاسخ خواهد داد شما این علامت های معجزات رو دارید که با اشاره به اونها میتونید دلگرم بشید و در ایمانتون تقویت بشید اگه تا حالا شرایط سختی نداشتید چی اگه تا حالا مشکل نداشتید چی؟ اون وقت هیچ نشانه ای از معجزات در زندگیتون نداشتید و به خدا نیازی نداشتید. یادم خانمی نزد من مراجعه می کرد و به تازگی ایمان آورده بود و می گفت واقعا نمی که آیا حقیقتا تولد تازه یافتم؟ من گفتم مشکل چیه؟ او گفت وقتی ایمان آوردم وقتی تولد تازه یافتم فکر کردم که آسمان آبیتر و علفها سبزتر خواهد شد و پرندگان دلنوازتر خواهند خواند او گفت من حالا مشکلات بیشتری دارم حتی نمیتونید تصور کنید قبلا این همه مشکل نداشتم نمیدونم چون مسیحی شدم این همه مشکلات برام پیش اومده در ابرانیان باب 12 متن زیبایی هست که به ما میگه که شرایط سخت لزوما به این معنی نیستند که شما ایماندار نیستید بلکه کاملا برعکس این نشون میده که شما ایماندار هستید شرایط سخت میتونه به این معنی باشه که خدا فرزندخوندی شما رو تایید و تصدیق میکنه خصوصا اگر اون شرایط سخت رو خود شما خلق کرده باشید. یکی از تعاریف رنج، یکی از سی اینه که ما چیزی که کاشتیم درو میکنیم ما به عنوان ایمانداران هر چی رو که کاشتیم درو می این امکان هست که بذر اشتباه در باخچه های زندگیمون بکاریم و بعد محصول اشتباه برداشت کنیم. وقتی ناعتاعتی می کنیم، چون فرزندان خدا هستیم، خدا میخواد ما رو تنبیه آیا به عنوان والدین چنین ای رو داشتید که فرزندان همسایهتون فهاشی میکنند شاید به همسرتون بگید اگه اونها بچههای من بودن، میدونم باشون چیکار میکردمد و همسر شما میگه اونا بچههای شما هستند پس شما میرید بیرون و یک کاری در این مورد میکنید اگر اونها بچههای شما نباشند هیچ مسئولیتی در قبال اونها حس نمیکنید اما اگر بچههای شما باشند میرید بیرون و اونها را تنبیه میکنید ابرانیان باب دوازده آیات 5 تا سیزده به ما میگه که خدا همون احساس رو در مورد شما داره. اگر شما از مسیر خارج بشید، چون شما را دوست داره، او شما رو تنبیه خواهد کرد و شما رو به مسیر برخواهد گردوند. ما در این آیات میخونیم که کلام خدا میگه گویا به کلی از یاد برده اید که کلام خدا برای تشویق شما فرزندان خدا چه میگوید؟ کلام خدا میفرماید، پسرم، هرگاه خداوند تو را تنبیه کند دلگیر نشو و هرگاه اشتباهات تو را خاطر نشان سازد دلسرد نشو. زیرا اگر تو را تعدیب می کند به این علت است که دوستت دارد و اگر تو را تنبیه می نماید به این دلیل است که فرزند او هستی. کدام پسر است که پدرش او را تنبیه نکند؟ در واقع خدا همون رفتاری رو با شما می که هر پدر مهربانی با فرزندانش می کند. پس بگذارید خدا شما رو تعدیب نماید. اما اگر خدا هرگز شما رو تعدیب و تنبیه نکند، معلوم می شود که اصلا فرزند او نیستید. زیرا هر پدری فرزندش را تنبیه می کند. پس چیزی که نویسنده ابرانیان به این نورنج میگه گه تعدیب هست. و این تعدیب تعییدی بر فرزند بودن ما هست. در این متن همینطور میگه این تعدیب در ما فیض و شخصیت به بار می آره. عادی بین امکان رو به ما میده که از قدوسیت و او با دیگران صحبت کنیم متن زیادی مثل این در کتاب مقدس هست این متن به ما دلایل رنج کشیدن رو میگند و همه همون چیزها رو عنوان می کنند. در اصل همون چیزهایی رو میگند که در کتاب ایوب ملاحظه کردیم رنج کشیدن در این دنیا با اجازه و اراده خداست کتاب مقدس رنج کشیدن رو مستقیم به خدا نسبت نمیده پولس رسول گفته خارج اسم او، بیماری او عاملی از شیطان هست. پولس گفته هدف از این بیماری فروتن ساختن او و نشان دادن بیکفایتی او و دادن این فرصت به او هست که کفایت خدا رو درک کنه. پس بیماری پولس با اراده مجاز خدا بود. همونطور که رنجها وارد زندگی عیوب شد تا خدا جلال پیدا کنه. به این دلیل های زیادی رو در کتاب مقدس می میبینید که میگن رنج برای خیریت شماست. مثلا مراسی باب سه میگه برای انسان نیکوست که یوغ را در جوانی بردارد. یعنی داشتن تجربیات سخت در جوانی خوب هست. یک تابستان وقتی که برای حزینه تحصیلم کار میکردم، من کار ساختمانیم را از دست دادم. اون موقع پنج هزار کیلومتر از خانه دور بودم و برای معاشم به اون درآمد نیاز داشتم. بعد وقتی کار دیگه ای پیدا کردم توی اون کار هم زخمی شدم. سر تا سر تابستان مشکلات یکی پس از دیگری از راه می‌رسیدند من نزد یک خانواده متدین مسیحی زندگی می کردم. یک روز غروب وقتی خیلی معیوس بودم و زخمی توی اتاقم خوابیده بودم یک خانم خداشناس که به دوشیزه جانسون معروف بود و توی اون خونه کتاب مقدس رو تعلیم میداد. وقتی کلاسش رو تموم کرد به اتاق من اومد تا به من دلداری بده او گفت تو چهار سال کتاب مقدس رو تحصیل کردی اما من مدت چهل ساله که اونو زندگی می کنم. اجازه بده که بهت بگم اوضاع از چه قراره. او این آیه از مراسی باب سه رو به من نشون داد. برای انسان نیکوس که یوغ را در جوانی بردارد. برای جوان خوبه که سختی ها رو تحمل کنه. خوبه که از ها عبور کنی و آزموده بشی. چرا باید اینطور باشه؟ تمام این متن به ما میگه که رنج چیزهای نیکو در زندگیمون به بار میاره رنج ها میتونن شخصیت روحانی به بار بیارن، میتونن قدوسیت به بار بیارن، میتونن ایمان ما رو تقویت کنن، رنج ها فرزند خاندگی ما رو تعیید میکنن. شما در این متن میتونید ببینید که رنج موضوعیه که در سر کتاب مقدس بر اون تأکید شده و محدود به پیام کتاب ایوب نمیشه. وقتی کتاب مقدس رو بررسی میکنیم، دنبال دلایل رنج های قوم خدا بگردید. ترتیبی بدید که جلسه آینده هم با ما همراه باشید تا بقیه این دلایل رو هفته آینده با هم ادامه بدیم. مایه خوشوقتیه که در این دوری مهم بررسی کتاب مقدس با ما همراه هستید. عزیزان ما چیزهای زیادی با همدیگه یاد میگیریم امیدوارم جلسه بعدی در ادامه همین موضوع با ما همراه باشید. کلیساها ها به شنیدن این پیام نیاز دارند. ما لازمه که این حقایق رو یاد بگیریم و در زندگیمون به کار ببندیم. عیسی در یوحنا 17 گفته: در این دنیا مشکل خواهید داشت، اما شاد باشید چون من بر دنیا غلبه کردم. ما میتونیم مطمئن باشیم که خداوند به ما کمک خواهد کرد که پیروز بشیم. با این حال مشکل خواهیم داشت، رنج خواهیم کشید. تا برنامه بعدی از این حقیقت که خدا شما رو دوست داره و برای زندگیتون هدف و نقشه داره قوت بگیرید. آرامش مسیح بر شما باد.